باب زکات زرعی باب زکات زرع کشته و وز... زکاة واجبتون فیما زرعه الادمیون و کان قوتا مدخر میگه زکاة واجب است در آنچه که انسان ها اونو میکارند و قوت باشه غذا باشه مدخرن قابل زخیره باشه و هو البر و شعیر و الاروز و الماش و وَالْعَدَسُ وَالْبَاقِلَّهُ وَالْلُوبِيَاُ وَالْدُخُنُ وَالْذُرَّهُ اذا بلغت السنف الواحد منهو خمسه تو اوسقین میگه زکاة واجبه دران چه که آدمی هاونو میکارند و قوت مدخر باشه زخیره شده عبارتند از گندوم و جو اینا هم قوت هستند هم زخیره میشند خشک میشند دیگه اروز برنج ماش نخود عدس باقلا لوبیا ارزن ذرت زمانی که هر صنفی از اینا به شکل جداگونه به پنج وسق برسه مثلا اگر گندم به تنهایی به 5 وسق رسید زکات داره اینجا شوفه وسقو نساب قائلا احناف خود امام ابوهنیف رحمت الله علیه خودش شاگرداش نه میگه چی کم باشه چه زیاد باشه زکات درش واجبه یعنی پنج وزقو در نظر نمیگیره کم و زیاد که باشه میگه زکات داره ولی قول صحیح مال جمهوره یعنی شوافه به زیاد شاگردانه امام ابوهنیف رحمت الله علیه انتوجه شد اینو اما در که قابل ذخیره باشه خوب انسان انصاف داشته باشه و قول امام ابو حنیفه رو کار بکنه؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه ادخار شرط نیست. قابل ذخیره بودن شرط نیست. متوجه شودی؟ بله. پس امام ابو هم رحمت الله علیه قوت مدخرو شرط نمیتونه بلکه هر چیزی رو که قوت مدخره رو شرط نمیتونه میگه بلکه هر چیزی که از زمین خارج میشه زکات باری و انفقو من طیبات ما کسبتم و ما اخرجینا لکم من الارد آیهش تو ذهنم نیست این لحظه باله وأنفقوا من طيبات ما كسبتم وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض خلاصة آيروا أقرب بخنام باله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و لكم من ما اخرجنا لکم من الارد امام ابی هنیفر همون میگه هر چیزی که باشه زکات داره خب و قدر الوسقی ستون سای زمانی پس در این زرع زکات میاد که به پنج وسق برسه و پنج وسق برابر با شست سای وق برابر با طق کیلویک که به دستش آوردند 1600 50 کیلو چقدر 650 خور کیلو پس اگر یکی گندم داشت به مقدار 650 خور کیلو رسید باید چکار بکنه ولی برای ذرت دیگه حول شرط نیست همون موقعی که برداشتش کرده ذاقات میگردد بعد دیاستی و تصویتی بعد از کوبیدن و پاک کردنش فای اوخد و من هل عشر چقدر گرفته میشه؟ این هم خیلی مهمه گرفته میشه عشر یک دهم اممسوق یا او اوسااحین اگر با آب باران یا با آب روان آب بدون زحمت آبیاری شده بود یک دهم ده ازش گرفته میشه. یک دهم ده از هر ده کیلو یک کیلو از هر ده کیلو <تصفيق> البته اگر بپنی وسق برسه مثلا شخصی اگر 1000 کیلو داشت 100 کیلو چقدر 100 کیلو زاکاتشی؟ البته اگر با آب باران آبیاری شده بود با آب رودخانه آب روان روانی آبیاری شدند و نصف العشر این سوقی بغربن و ندحن. و نصف عشر میده. یعنی یک بیستون اگر با زحمت آبیاری شده بود به غرب غرب مشک آب رو میگن دلم بزرگ رو میگن با شطور آبیاری کردن رو میگن ندخ همچونی زمانی که کشاورزی با شطور آبیاری بشه نه از تا یک کیلو اون موقع از هزار تا میشه پنجه کیلو ولا یوربان مصنفن ایلا غیری میگه اینج سنفی به غیر دیگه حیوان دادن نمیشه مثلا یکی گندم داشت 300 20 کیلو جو داشت هم 300 مثلا 40 کیلو اینها دکه زکات ندارن چرا؟ چون اینها دو سنف جداگانه میگه ولا یوربان مصنفن ایلا غیری نمیشه اینها دوتا رو باهم حیوان دادو از به 60 کیلو شون 65 کیلو اینها رسون دو تیکار ازشون چی چگر گرفت؟ بله نه هر به بالتنهاءي اگر به با این پنج وصف رسید زکات داره ولا ز... ولا زکات في البقول والخضر در بقول در بقول مثل لوبیا و نمیدونم این بقول بقول این چیزایی که سبز هستند بقولی بقولیجات و خضار سبزیجات زکات ندارند مثلا الفه یونجه احناف میگن زکات داره ولی شوافه میگن این زکات اولا في القطن والکتان در قطن پنبه و کتان زکات نیست چون اینا قط مدخر نیستن ولی قول احناف و غن سهیتر میشه این مسلاه چرا قول امام فر رحمت الله چون امروز پولی که شما مثلا از کتان دست میاری به مراتب بالاتر از گاندومه مثلا جوه ولا فیما لم یزرعه الادمیون من نبات الجبال والعودیه و زکات نیست درون چیزی که آدمیون اونو نمی کارند از اون چیزی که در کوها و رودخانها و صحرا سرج میشه و انکان قوتن لأهلها اگرچه اون چیز هم قوتی باشه ولی چون آدمیان اونو نکاشتن دیگه زکات درش نیست پس در بقول اون چیزایی که سبز خورده میشند آ. اون چیزایی که سبز خورده میشن مدخر نیستند زخیره نمیشن یا سبزیجات در اینا زکاتی وجود میگه نداره مثلا اصفناجه اصفناج سبز خورده میشه ولو این که قیمتش هر کیلوش الان تو بازه تو من هم باشه مثلا دیگه میگه زکاعت در مذبه البته جمهور باب زکات زکاعت ثمار پس باب زکاعت زرع خوندیم زرع گفت اونا رو نام برد برنج بود اون چیزایی که قوتو بودند تو مدخر بودند و انسان ها کاشته بودند بابو باب زکات زکاعت ثمار باب زکاعت سمرها میوه ها و زکات واجبتون فی ثمار النخل و کرمی خاصتا در میوه ها میگه زکات واجب فقط در سمره نخ خرما و کرم انگور فقط خاصتا یعنی در بقیه چیزا بسه انجیر و انار و بقیه چیزا زکاتی میگه وجود نداره چون اینا نخلو کرم خرما میشند و کشمش نه اشوافه قیاس قبول دارن ولی از اون زاویه در علت در علت و اون قوت بودن و مدخر بودن میان میگرندش مثلا پرتغاله که این چیز درش پیش نمیاد ولی خوب اگر خود فقهای های قدیم واقعا در عصر ما میبودن با این تکنولوژی اونای که قیاس قبول دارن ظاهریه که خوب هر چید فقط در حدیث اومده میگن درش زکات است علمای سلفی هم مثلا امام شیخ البانی همین رویه رو داره یعنی نسگره هست این خاطر در خیلی از چیزا زکاتو و مثل ظاهریه قبول نداره بلی علمای که قیاسو قبول دارند. خودشون با هم بازم متفاوتن چون در علت احناف امام ابو نفر رحمت الله علیه در این مورد از همه وسعتش بیشتره و واقعا هم انسان بیاد بررسی بکنه به همین نتیجه امام ابو نفر میرسه چرا چون بحث زکات بحث تقسیم سروته یعنی اینجوری نباشه که یکی میلیاردر باشه اون یکی دیگه در بغلش از این مال زکات گیرش خب فقط این غ... غنی بودن که در گندم و در اون سمفیک در هدی سومهد پیش نمیاد چون زکات مالی که یوخذ من و وترد الى فقره از اغنیا گرفته میشه و بکی داده میشه و غنی بودن که فقط با گندم پیش نمیاد ها امروز مثلا یک کسی که پس میکاره تو جهان به مراتب غنیتره از اون کسی که داره جو میکاره اونی که زعفران میکاره به مراتب غنیتره از اونی که گندم میکاره باره در هر صورت نظریه فقه هست الله الجمیع اون میگه زکا تو از در سمار نخل و کرم فقط یو خرسانی روتبن و عینبن تخمین زده میشن زمانی که راتب هست نخل و اینب هست انگور و یوردانی الی مایرجعانی الیهی تمرن و زبیبن و وازگردانده میشن به زمانی که تمر و زبیب باشند. معنی چی من منظور جبل چه هست بله میگه زمانی که نخل رتبه و انگور هم داره اینا رو میان تخمین میزنن که آقا زمانی که مثلا این رتب الان مثلا فرزن ست سایه مثلا میگم ولی زمانی که تمر شد میشه مثلا هفتات الان مثلا خب وارد بوده اون زمان تو کارشون بوده نه مثلا الان این, این انگور دویست سایه تا اون موغه میاد مثلا خوشک شد صد به این شکل متوجه شدی؟ فاذا بلغ كل واحد من خمسه اوسق ففیه و نصف العشر انسقیه زمانی که هر یکی به پنج رسید یعنی تخمین. تخمین اون یک دهم اگر با آب باران و با آب روان آبیاری شده بود با آب روان آبیاری شده بود و نصف عشر زکات ازش گرفته میشه یعنی یک بیستون زمانی که با زحمت آبیاری شده بود مثل شطر و مثل طلمبه های این زمان و خلاص راه که طرف هزینه خرج میکنه برای آبیاریش ويخير ربهم بعد الخرص بين أن يكون في يده أمانة فيمنع من التصرف فيه أو يتصرف فيه وعليه زكاة ما بلغ الخرص اختيار دار صاحب مال بعده انتخمين بين إن چيز كي در داس خلش بعموان امانت بمونه ودرش تصرف نكونه ازش اسفاد نكونه وبين اين چيز كي بكونه اون تخمید ازش چه گرفته بشه زکاة گرفته بشه الا ان تأتي عليه جائحتون قبل امكان الزکاة مگر این که مصیبتی بر اون بيات. کشاو برش بيات. که انجا دیگه فلاعی وخدو بها که دیگه بخاطر این مصیبت بخاطر این آفت دیگه اون مسئول نیست او مالا یسیرو من سمار نخل والکرم تمرن او زبیبن اوخیده عشر ثمنه ثمنهی ورقن وانچه که از سمار نخل و انگور تمر تمر نمی یا زبیب نمیگرده میگه که عشرش گرفته میشه عشر پول نقدی ازش جلفت میشه. ولا زکات في فواکه، ولا فی زیتون، ولا في الورس و الزافرا. میگه زکات در فواکه نیست، در زیتون نیست. عبده فواکه میبره میگه. جز انگور، خورماتی مورکی. با این ادبیاتی که سخن میگه. و گرنه خوده مثلاً انگور، خورما رو فاکی هن. میگن ولی بعضی میگن نه مثلا بعضی از فرهنگ لغت ها میگن فواکه میوه رو میگن جز انگور و خورما و بعضی انا رو هم اضافه کردن خب کاری نداری پس زکاتی در فواکه نیست مثلا پرتقاله لیموه به بگو اسماشونو حلوه شفتالوه فلانه, فلانه. اینا میگه زکات نداره خب واقعا اگر یعنی اصلا ما بگیم طبق اصولی که اون زمان ائمه بهش رسیده بودند اگر در دنیای تکنولوژی امروز واقعا نظرشون ثابت میشد تو خیلی از مسائل ما داریم طبق عرفی نظراتشون عوض شده یعنی الان اگر در دنیای امروز حنفی ها شافعی ها مالکی ها حنبلی ها و دیگر و دیگر پیروان مذاهب اسلامی طبق اصول اون امامشون حرکت میکردن خیلی از نظریاتشون عوض میشد خیلی از نظریاتشون چی میشد؟ مخصوصا اون نظریاتی که مبنی بر یک علتی بودن که اون علت دیگه تغییر کرده یا مبنی بر یک عرفی بودن که اون عرف دیگه الان چی کرده؟ تغییر کرده ولی در این مسئله زکات همانطور که در مسئله عبادات فقه امام شافعی میچربید واقعا بر فقه امام ابو حنیفه الله علیه در قسمت زکات به نظر بنده البته فقه امام ابو حنیفه نومان میچربد به اون مقصد شریعت از گرفتن زکات از گرفتن زمانی که البته تمام نصوص ما کنار هم بیاریم ولی اگر تکنسی و جزئی بیاییم که نه به اون نتیجه میرسیم که امام ابو داود زاهری رسیده امام ابن حزم رسیده شیخ رسیده، شیخ شوکانی رسیده و فقه های مذاهب چون فقه های مذاهب، مذاهب عربعی، از فقه های ظاهریه بعدن در خود فقه های مذاهب احناف وسط بیشتری دارن عبادت که خب طبقه نه سر میشه منظورم تو مسائل قیاس هست و اجتهادی هستند و غیر عباداته ولا زكاة في الفواكه ولا في زيتون مجازاة در فواكه در زيتون نيست ولا في الورس والزعفران ودر جل در جهة ورس ودر زعفران مجازاة موجود هذا الآن هر كيلو زعفران ده مليون ومن جا روي باقي عندم هم كه سهّزار تمني خب رحم الله الجميع بأميرة روزي كه پیروان مذاهب اسلامی در کنار هم بدون تعصب بدون چی؟ تعصب صحیحترین نظر و بهترین و بپذیرند ولی اینکه به نتایج مختلفی برسند ولی همین که پویایی داشته باشند همین که همین حرکت شروع بشه اون موقع تعصبات از بین میره دیگه امت به جای میرسه که به خاطر مسائل اجتهادی هم دیگر رو تزلیل نخواهند کرد